ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه زلف در دست سبا گوش به فرمان رقیب این چنین با همه در ساخت ای یعنی چه شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه نثر زلف خود اول تو به دستم دادی بازم از پای درند آخته ای یعنی چه سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان و از میان تیغ به ما آخته ای یعنی چه هر کس از مهر تو به نقشی مشغول آقبت با همه کجب باخته ای یعنی چه حافظا در دل تنگت چه فرود آمد یار خانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه